بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدُ خوب درس دئوم از کتاب رساله‌ی فائدهای چهارگانه قاعده دئوم رو میگیریم قاعده اول این بود که تا ان کی در فریبی این نہ ہفتہ کہ کسے بغیر من رازیق من با اللہ ہے بہ همه بغیر تمام المسلمون اے کو مسلمان مسلماناں ہم خیال میگن کہ اللہ خالق اس الله رازیق اللہ زندہ میکرد خب ارم شیکای مکہ هم میدانستان ادم شیکای هم این چیز را میدانستان خب دانستن او و اقرار کردنی کردن مشرکای مکہ تافید ربوبیت را اونها را مسلمان نکرد خون و جان اونها را محرم حرام نکرد بلکہ ایا مر صلی الله علیه سلام با اونها جنگیت و خون اونها رو حلال دارین برای چی؟ برای اینکه دل الوهیت در الوهیت اشتباه داشتن در توحید الوهیت. خب اکنون باز همین الوهیت در طریق اشتباه و خطاشون گمراهیشون چخیل بود. اینا قاعده دییم دمی گریم. قاعده یکم خلاصش همین کی مشکای مکه توحید ربوبیت قبول داشتن و این ربوبیت فایده شاد نکرد. ما هم باز اگر همین اعتقاد رو داشته باشه ولو در دا خطا داشته باشا گمراه شده باشن و مسلمان گفته نمیشه و حتی بعضی از السو... مسلمان های گمراه مثلا بعضی از ها و این حتی عقیده دارن که ربوبیت هم به صوفیا نسبت بده گسن که پروردگار که در عرب این عالم کنترل میکنند، یعنی عقیده بعضی از مشرک های این زمان داره یا صوفی ها داره غلط صوفیا این عقیده کفر و شرکی رو حتی ابو جهل مشرک های مکه نداشتن یعنی شرکی المی و چخچونی که میاره شرکی مشرکای سوفیا باد القبور شرکی انها سخت تر است از غلات سوفیا ده سخت تر است از شرکی بو شیکای مکه ده حال قصهای خیلی زیاد است که فلان یعنی چیزهایی دارن قصه ها یا عقیده که در کتاب های غلاط صوفی ها و که هست ایسان بخوانه حیران میشه و که مشرک های مکه این خیل عقیده خبیص را نداشتن ابو جل نمیگفت که غیر الله میافره اما بعضی صوفی های هست که میگن اتا این یک صوفی معروف هست جیفریش میگن این همیخیل میگد که پیر میگد توانایی داره که از غیر الله جنین را در شکم مادر بی آفروارید به یادت بالله این کفرش از کفر ابو جهل بدتر است نفر جی فرینم باید انسان به خاطر همین این چهار و این چهار رو خوب میشناسه که شرک در بود خب اول همین بود که مش اول همین بود که مشرکای مکه توحيد الربوبيات را قبل داشتن. خوب قاعدت ديوم دي قال المؤلف رحمه الله القاعدت الثانية انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ولكن على قاعدت ديوم دي همينكي دعونا ميقفتن مي ما مي نمي خانم دعونا نمي كنم عبادت نمي و توجهنا الیه روبا اونها و معبودها مون نمیاریم مگر برای طلب کردن نزدیک شدن و برای شفاعت یعنی قیده دین خلاصتش خلاصش همین کی مشرکای مکه عبادت میکردن غیر الله را به خاطری شفاعت طلب کردن و به خاطری وسیله قرار دادن برای انم قکار یعنی حتی الوهیات چون مشکلی داشت است مشکلشون در مشکلی در مشکلی چیست؟ مشکل شون در مشکلی علوهیت در بابی تنها شفاعت و تنها توسل کردن توسل شرکی خب چی میگفتن؟ میگفتن ما اینها را فریاد نمیکنیم رو به اینها نمیاریم الکیجا نمیکنیم اینها را مگر به خاطر نزدیک کردنی به الله و شفاعت طلب کردن اونها خب یعنی چیه کنون؟ بعد به خاطر این صوفیه او مشرکا را که فهمیدی و مشرکای زمان را باید بدانی که اینها بود مثلا گمبازها را قبرها را ولیای خدا و دوستهای خدا گفتا عزیز خدا را میپرستن. برای چی؟ رنگ همو برای طلب کردن شفاعت. برای تا اینکه ما را به الله نزدیک کنن. اونها که صالح هستن ما را تا اینکه به الله نزدیک کنه گفتا همین کار را میکنن. خوب. و دل... خوب. دلیل چیست که اونها تنها عبادت میکردند برای نزدیکی باز به با الله یعنی تنها وسیله، وسیله واسطه قرار میدانند. این لا توعزاره. مشریک های که بود را میپرسیدن، این بودها را همچه وسیله میدانیدن تمام. نه اینکه اینها خالق است و رازق است. نه اینکه در حقیقت اینها هست معبودی حقیقی خیله بودن. فقط وسیله به معبودی اصلی که الله سپنان داره به اون میدانید. دلیلش چیست؟ دلیل اینکه اونها عبادت میکردن لا توعزاره برای نزد قوله الله تعالى اسكي الله يقال والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هارو اينكه سوني قرار ددان گرفتن از غير الله اولياء و دوستهاي را كي ميگفتند ما نعبد و نه پرستيم اين معبودها ما نه الا الله زلفا مگر اينكه نزديك كنا ما الله نزديك كردن زلفا مگر این که ما را به الله نزدیک کنه لات عزا و منات و دیگر معبودهایی که داشتند از بود همین بود مقصد اصلیشان که ما را به الله نزدیک کنه الله میگه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله را اینا حكم اینا این حکم کنه در بین اینها در اون که اختلاف کردند ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله سبحانه و حسره که دروغگو کافر هست معلومه شبه که اینها را حکم به کفر کرد به خاطر وسیله شرکی قرار دادن به خاطر که به همین واسطه شرکی یک سر سبب قرار دادن واسطه قرار دادن در حالی که الله او را واسطه قرار نگرفت یعنی الله در یگان دین ها امر کرده گیری است که غیر مرا بپرسته تا اینکه به من نزدیک شو خیلی نیسته قبر حسین و قبر جیلانی را فایرد تا این من مقصود باشم ای خیلی گفتگی نیست. الله حکم کرد که اینها کذا دروگوی چیستن؟ کافر هستن. خوب یکم امین. این زده گفتن ما یا نعبوده هم ایلا لیو مقصد اصلی الله سبحانه وتعالی هست. این بودها و این گنبازها و این لاتعزها تنها مجردی وسیله یا وسیته هست. و باکنون باید انسان تصور کنه اکه مشرکای زمانی کمونه. والدليل الشفاعه خبوز مپراستيدن غير الله را به خاطر شفاعت طلب كردن قول تعالی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقرون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومي پرستن ابو الله ميگد و عبادت ميكنن از غير الله اون چيزهايي را كي نه ولا ينفعونا فويده شون ميكنه يعني خبش زات خودشان لا توزا zarar rasona nemikona یا درخت هست یا چوبی هست یا مرده هست ضرر نمی رسانه یعنی به استقلالیت ضرر نمی رسانه ضرر نمی رسانه اما آیا ضرر داره بله شرک هست عبادتی صرف غیر الله هست انسان دین ببراره ولی انفعه هم فایده شو نسانده نمی تونه نه شفا داده می تونه بیمار شاید عبید ولیه که همین عزیز خدا گفته که می پرستن او را فریاد بذارن که شفا بته شاید خلی و خود اولی از به بفرزن رفتگی هست و خطیر امین این معبودهاش رو نمی پرستن این حال نفایده شد میکنن یعنی فایده رسانده نمیتونن و نه زرار رسانده نمیتونن لیکن انسان از دین برون میکنن خارج میکنن خب عبادت میکنن غیر الله رو برای چی؟ برای که ها هؤلاء شفعه اونه عند الله آنها یعنی این معبوده های غیر الله شفعه اونه ما هستند، لعند الله تنها شفاعت کننده شفاعت کنه ما را که اونها میگن به الله نزدیک هستند اونها که مثلا اعمال صالح کرده هستند بسیار ما را میگن به الله نزدیک کنه و قریب کنه خب این دعوا شنام دعوای بی اساس به دربار اعتبار داده نشد خب چرا شفاعت طلب بگیرید از چرا چیزی را شفیع شفاعت کننده خود قرار می در حالی که الله را شفاعت کننده قرار نداده است یعنی این دعواشون ها اولی شفاعه اون عند الله خود احتج به دلیل قوی می کنه کرد به علاوه این قبور ها بعد قبور و غیر اینها از این مشرکا اینها باید همین چیزکایی که میکنه هیچ دلیل نداره ساخته و را میکنن اینکه همون قبر ها را عبادت کنند الله را الله همراه الله شریک قرار دهند یعنی مثلا زبح با نام فلان ولی یا نظر برای فلان خواجه بلاگردان میکنن خواجه چون چی بلاگردان یعنی و یعنی را گویا میکردانا دور میکنن گویا با دیهارا ولی عیدو بالله یعنی یعنی غوف الاعظم یعنی یاردم چی بزرگ غوف یعنی یاردم میکردگی کمک میکردگی عبدالقادیر جلانی را بگن غوف الاعظم هست یعنی کسی کمک بکنه نصرات بکنه و مهم که هر یک ولی و قولی ولی عزیز خدای ببتگی سنن و عبادت بکنن برای چیی تو اینکه شفاعت کننده در نظر الله باشن. خب بس معلیف می گرد خب اینها که نفهمیدن حتی صوفی های قبولی های ما هم نفهمیدن که شفاعت چند قسم است. انا به معلیف می گرد و شفاعت و شفاعتانی شفاعت دو نوع است. کردن دو نوع است. اینه مهم میدانستان شفاعة منفيه وشفاعه مثبته شفاعتهاski در قران و در دين در قران نفي شدهگی است منعس ممنوع و شفاعتشكي اثبات شدهگی است شده اثبات يعني الله اور اجازه ددهگی شفاعته خب اكو شفاعات منفي شيست يكي شفاعتي ممنوعه و شفاعتي جائزه ما كانت تطلب من غير الله شفاعات ان في شدا هم شفاعتی است از غیر الله طلب کرده شود فی لا يقدر عليه الا الله در آن است قادر نیست توانایی ندارد الله سبحانه و تعالی خب طلب کرده نمی‌شود همین شفاعت های مشترک الله سبحانه و تعالی نداده الله اونها را به این امر نکرده و چیزهای طلب بکنی که الله قادر نیست یعنی به شفا مثلاً رزق و روزی را خواست از غیر الله طلب کنند در حالی که الله سبحانه غیر الله با او قادر نیست و دلیل یعنی شفاعت نه نفی شده همون است که از غیر الله طلب کنی یا رسول الله شفاعت بگو انسان مشرک بشواده زیرا که شفاعت قل لله الشفاعه جميعا الله مقبوج همه شفاعت از الله است مبدئی بر این از غیر الله شفاعت طلب کرد فقط الله را طلب میکنی шафаат курандай те қарор бете, лекин аз аллоҳ талаб мекунед ки я о я аллоҳ шафоати набия ка фия. Наби пайгамбар атро муҳаммад саллаллоҳу алайҳи салом ра ба ман шафоат кунанда қарор бете. Аммо ин жоиз аст. Аммо аз худи пайгамбар саллаллоҳу алайҳи салом як якбора шафоат ра талаб кардан ин дуруст нест, ин жоиз нест, балки امونه الله تبارک و تعالی kardeşlerim şefaat boyad Allah boyad az Allah talep kerdan va dar an chizi ki ghayri Allah qadir nist misli fardan talep kerdan yo shifa talep kerdan yo kushay shikkan dalil chiz ki şefaat ehtibar nadare va dalil-i qawl-u taala ya ayuhellezina amanu anfiqu mimma razaknakum min qabl ayati از آنچه که من به شما رس داددن فش از اینکه روز بیاید که در او خرید و فروش نیست سودا کنی نیست تو اینکه چیزی بفروشی و سر حسنات و خوبی ها بخرید وا خلتون و دوستی هم نیست دوستی و یاری کننده و هیچ چیز نیست غیر. الله الانکس دیگر اوجا کمک کردن حق ندارد وا شفاعتون و هیچ شفاات هم نیست انا شفاعت می شفات همون شفاعاتی که مشریکا طلب ب کردنن میگفتن شفات ما هست جنت را از اونها طلب می و اللہ مگد والکافرون هم الظالمون کافرها انها هستن ظالم کنند خودشان. خودشان نفس خود را ظلم کردن زیرا از پیش خود شفاعت قایل شدن و بمبنی بر او شفاعت را از غیر الله طلب کردن. خوب. اوز شفاعتی که اللہ مگد ولا شفاعت یعنی نفی کر شفاعت را شفاعت کافرها شفاعتی که از غیر الله طلب کرده شوه و ممنوع است و وجود نداره و شفاعتی که از غیر الله طلب کرده شده که قادر نیست با او غیر الله این هم اعتبار نداره یعنی مختصر همین که آیا یک ولیه یا او نبیه یا کسی میتونه آدم هم به الله به اجازت الله از دوزخ ای جنت ببره را دوزخ بره البته اما مشریک این زمان از رافزی ها که میگن اهل بیتی پیغمبر خاصتان علی هست میگن آدم ها را جنت را دوزخ میبرن بسید بعض عباد و پیرما چن هون فر رو بعه دګی فی گاسکی دوزخ از جنت جنت به براو ایدوزخ خارج میکنه یو پدر میگه در خوب دیدیم کی پیر آمدو گرفت ایدوزخ دستش گرفت و به جنت آورد یعنی چیزهای را نسبوت ان همین شفاعت های میگفتگیشان ان همین واسطه های قرار میددگیشان دا در قران نفیش شده کیست به علاوه این مشرکا به اون مشرکا به حد موننده است اما اینکه خالق الله میگن رازق الله است این ادم بو باید, باید مخروز شوه با اینکه نماز و روزه میگیرن نباید آدم مغرور شود بلکه مهم این نیست که روزه می یانه مهم تر اینه ای که توحید باید داشته باشند باید شرک رو با... از شرک بواید دور باشن یکی از شرک شفاعت طلب کردن از غیر الله است یکی از شرک عبادت از انواع عبادت رو به غیر الله صرف کردن است خب شفاعتی نفی شده کدام بوده است همون شفاعتی که طلب کرده کردش از غیر الله در آن که قادر نیست غیر الله سبحانه و تعالی نداره غیر الله خوب شفاعت مثبته کدماس شفاعت مثبته هي التي تطلب من الله هر شفاعتكي از الله سبحانه و تعالی طلب كردار شواد و شافي مكرم بشفاعت شفاعت كنندرا الله اكرام ميكنه قدرداني ميكنه به شفاعت كردن مثلا پيغمبر روز قيامت شفاعت كنه بعد از اذن الله هر كيكي الله عز و جل بخواسته باشه به حالت گويو پيغمبر رو اكرام كردگي است جایگاه و در نزد در خوب والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن وشفاعت كنندرا يعني شفاعت كردا شده والمشفوع له يعني كسي كي شفاعت كرد ميشوه وشفاعت كردا شده بويت چه باشه از جمله کسارو باشه رضي الله قوله يعني الله عز و باشه عمل او الله بيپسنده بي أو, أز... او رو بي بي يعني يعني بيه بيه الله از يعني يعني اين كسي كي شفاعت الله عز يعني اينكي نبايت مشرك باشه و نبايت كافر باشه یعنی حتی شفاعت کننده مثلا فرض کردیم حتی اگر حضرت حسین رضی الله عنه امکی شفاعت کنه الله اجازه شفاعت کنه در روز قیامت هیچو هر و هر شیعه کافر را شفاعت کرده چرا زیرا که الله سبحانه و از این اعمال رافیزی از این اعمال عباد القبور راضی الله سبحانه بد می‌بینه خلاص کلان شفاعت مثبت قران همون شفاعتی از الله سبحانه طلب karde شورا خب اکنون بعد از قول دیومش شفاعات شفاعاتی در قران تشهر داره شفاعتی که حق است شفاعاتی که جایز است دو شرط شرط یکم اینه که به اذن الله باشه الله اجازه بده که مثلا پیامبر یا مثلا فلان و فلان صحابی یا فلان مؤمن شفاعت کنه اذن الله مهمه الله میگه من و الذی عنده الا باذنه الکیز میگه نیست کسی این من جوانی یعنی نست کسے کی شفاعت کنه دنس ذ اللہ مگر با اذن اللہ با اذن اللہ ما ذللی یشفوع عنده الا باذنہ یعنی معلومه شوکی غیر در پیش الله سبحانه و تعالی کسے به اذن و به اجازه تعالی شفاعت کرده نمیتونه شفاعت کرده نمیتونه خوب دیم و دیم شرط دیم همین کی شفاعت کرده شده کی کس باشه کی الله عزوج راضی باشه به این معنی کی باشه لو کنده وای از مشرک کفر باشه چرا الله میگه ولا یشفعون الا لمن ارتضا الله سبحانه و تعالی ولا یشفعون شفاعت نمیکنن و شفاعت نمیکنن این شفاعت الله اجازه داده که شفاعت کردنشون رو شفاعت نمیکنن الا لمن ارتضا الله پسندیده است یعنی کسی که موحد باشه اما مشرک ها شفاعت شفاعت كنان دفعه داشته نميكنا فأي الله سبحانه وتعالى مده وما للظالمين من حميمي ولا شفيعي يطاع براي ظالمهو نا دوستي هست كي كمك شوكرا ونا الشفاعت كنان دي هست كي شفاعتش اطاعت کرده شوه مهم كي شفاعت اسباتش لكي دوتا بإذن الله باشا وبرائه كسي كي الله از اعمال او راضي باشا يعني يعني شخصي موحيد است اما شخصي كافير وشخي مشركة شفاعت کسی شفاعت کسی او را قایده نمکنم. این بود قایده چندون. قایده دیون. قایده دیون همین که مشرکای مدکه الله در شریک آوردن به طلب کردن شفاعت یا به وسطه قرار دادن. یکم ربوبیت در دا اقرار داشتن. قایده یکم اقرار ربوبیت او را در دا ایسلام داخل نکرد. دیون. شو... الوهیت در شفاعتهای قرار دادن. از پیش خود شفاعتهای را با الله در حالی که الله سبحانه و تعالی اورا اجازه ندادگی بود و الله سبحانه و از پیش خود شفاعت های تراشیدند خوب این قاعده دی بود قاعده دی چی شفاعتها شفاعت قرار داد یا اینکه واسطه های شرکی قرار دادن. و دی همین که می پرستیدن غیر قاعده دی من خلاصش عبادت میکردن غیر الله را تا اینکه این غیر الله اونها را به الله نزدیک کنه خوب بعد ای صوفی این صوفیا چی فردار یگان فرق اینو که سونی گره اله الله رو میپرستان ولی حسین میگن عبد القادر جیلانی یا حسین میگه مقصودش رب حسین است چون باق تفسیر میکنه الله داده نمیتونه ها بو گپیکو شکایت میکنه خب برای چی شکایت شدن قرار دادم خلاصش همین توحید برای چی شکایت ба хотири васитаи ширки qarar dodam. Хуб, ана ми қоидаи диюм бо тури сохтани ана мена, ки мушрикони Макка васитаи ширки qarar dodam, мабили бар ин рубубият чанам қоида сонна кард. О қоидаи сеюм чи? Хуб, ал-qaidatu ath-thalithatu an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam azhara fi unasin mutafarriqina fi ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم خو بين شبهه اي قاعده امين اني كي كسمغت كي مثلا عباد القبور نماز بخونين كو صالحين ميپرستيم مي او مي كي شما ميگيد ميگه اونها بود ميپرستيدن رد همين همين كي اونها همش يا خله بود براي قشخي الله عليه وسلم قوم اومد مردم های گناگون بودن در عبادت ها بعضش بعضیش ها را میپرسید که صالحین هم. و بعدش انبیاء و صالحین را میپرسید که پیغمبر ها را میپرستند آدم های صالح را میپرستند چه که شما حسین میگوید عبد القادر جیلانی میگید همین خیر و بعضی اونها درخت ها و سنگ ها را میپرستیدند اینها هم می خیلی اما قبر ها گنبد ها و بعضی اونها آفتاب و محتاب را میپرستید و قاطران پیغمبر صلی الله علیه با اینها جنگید و فرق نگذاشت بین اینا. یعنی مشریک مشریک اگر اگرچه نبی را بپرسته. مشریک کافیر میشه و ایدین میبرایا. اگر اگرچه ولی را بپرسته. شرک توحید یا عبادت. عبادت حق خالق است جایز نیست برای کدام از مخلوقات صرف کردنش. نه ملائکه، نه ولیه، نه نبی نه صالحه، نه طالحه. خب، انا می قایده دیم امینه پیامبر صلی الله علیه و در قوم آمد که عبادت‌های گناگون داشتند اینو شیکو میگه چرا شما ما را مشرک بگی که ما مثلا بت نمیپرستیم خیال کردین که این شیک تنها بود پرستی است بت لات و عزه را پرستیدن نهی بلکه عبادت ملائکه هم شرک است عبادت محمد صلی الله علیه و بهترین پیغمبر ها هم شرک و کفر بدبخت این مهمه این قاعده سی همین که پیغمبر صلی الله علیه و السلام پیغمبر مختلف بودند بازی ها سانغا پاراستان بازی ها نبی و ولی را پرستیدن خوب دلیل چیست اکرون بعد یک تا یک دلیل شه میگه الله مجاد والد دلیل قوله تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه الله مجاد بی جنگید بی کوشه ان مشکاره حتى اینکه فتنه نباشه فتنه مقصود شرک نباشه کفر نباشه صرف عبادت برای الله نباشه خوب حتى لا تكون فتنه و كله لله تا اینکه دین همش ازان الله سبحانه و تعالی باشه تا اینکه دین همش دین یعنی مخصوص دین عبادت باشه تا اینکه عبادت همش ازان الله سبحانه و تعالی باشه و کلو یعنی تمام عبادت ها برای الله باشه تا اینکه همراه الله شریکی نباشه کسی که باشه باشه باید شریک ده باشه خب یعنی چی الله مگه میگه باید کنه دین کلو لله یعنی شریکت باید شریک آورده نشه به الله کسی را نه ولیرا نه صالحرا نه نا درخترا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه بجنغه اونهارا تا انك فتنة, فتنه يعني شر عباده غير الله حتى لا تكون وقاتلوهم بجنغه كسر استثناء كد كي اگر ولي ربا پرستا نبي ربا پرستاني اي خلنيس بلكي اوماي حتى لا تكون فتنه فتنه يعني مقصود شركه تا انك شرك نباشه فتنه والفتنه اشد من القتل مقصود شرك وكفر شرك الشركه كفر سختر اس بشتان. خب، بعضی ها فیدنه, بعض فیدنه ترجمه میکردن، این خیلی نیستد، فیدنه بمعنی, بمعنی معروفش نیستد خب، مؤلف می کی که و الدلیل و الشمس و یعنی مثلا این کسانی که پیانبر الله اللہ علیہ وسلم با اونها جنگید و اونها افتاب و محتاب میپرسیدن، قول الله سبحانه وتعالی هست که و من آیاته اللیل ای و النهار و الشمس و یک از نشانه های بزرگ یگانگی الله و قدرت الله این شب و روز است، آمدن شب و است Аллах мегед, «Ла тасжуду ле шамсі, вола ле камари. «Васжуду ле ле леди халага хун, на инкончум ия ху таабудуд». Аллах мегед, «Ла тасжуду». Сجда не кунет бе афтаби, و не бе махтаби. Белкі сجда кунет бе рај заті ке, афаридан, афарид, афтабу махтабра. «Инконтум ия ху таабудуд». Агер шума Аллах ра عبодет бекарда беше, гайри Аллах ра عبодет не кунет. اگر کسی را عبادت کرده کادن هسته پس الله را عبادت کن نه غیر الله را پس الله را عبادت بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلام به خاطر همین بود که سجده کردن را در وقت افطوبرویی و در وقت افطوبشنی در طلوعی آفتاب و غروبی آفتاب مانکت به خاطر همین تا اینکه انسان مانند نشو در این دو وقت مان از ممنون نه ورشک برای نواز خواندن تا اینکه مثلا مانند نشیم به کسانی که آفتاب و ماهتاب را میکنند اینا منع پیامبر صلی الله علیه و آله از سد ذرایع یعنی بستن راه هایی که آدمو به شر میبره اگر شر نیست در اول لکی تو اینکه که به مشرک ها مانند نشه تو این که کسی بیننده نگت که افطار میپرسته سد ذرایع محکم کردنی بستن راه هایی که آدمو به شر میبره خب بعضی هاش ملائکه را میپرستیدند مشرکایی که پیامبر صلی الله علیه و آله با اونها جنگید صالحین را میپرستیدند فایده شو نکرد ذره که در شرک بین ولی و نبی فرقی نیست بين حجر و شجر فرق نيست بلڪه شرك شرك است يعني حق خالق را در مخلوق صرف كردنه كي مخلوق كسي كي نو وابسته است كي بودنش جويز نيست دليله اين كه ملائكه ها را ميپرستيدند دليله اين است كه الله مګد ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا الله امر نكرد است ولا يامركم همچنين الله امر نكرد الله سبحانه و شما اینکه ملائکه ها و پیغمبر ها, ها, ها را ربهای قرار بده ارباب یعنی رب معبود و الله امر نکرده شما را اینکه ملائکه رو بعضی ها ملائکه را میپرستیدند و بعضی ها پیغمبر ها را میپرستند حضرت عیسی و اینا الله میگه الله شما امر کردگی نیست بلکه امر کرده شما را که تنها او رو بپرستید و بعضی ها هم انبیا را میپرستند دلیل ش است که الله سبحانه و و قال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه الى هين من دون اللہ? الله الله سوختگی هنگامی که الله سبحانه و تعالی میگوید برای عیسی ای عیسی فرزند مریم او تو برای من و معبود از غیر الله قرار بدید یعنی ما من و مادرم را عبادت کن از غیر الله الله سبحانه و تعالی حضرت عیسی را میپرسد مثلا این نصرانی ها عبادت هاش را فقط بنام مادر مریم و رحول قدس گفته عبادت بکنه حضرت عیسید چی میگه؟ مگه قال سبحانک ما یکونولی ان اقول ما لیسلی بحق مگه یارب سبحانک یعنی پاکم رزه هستی تو یارب ما یکونولی جائز نیست برای من اینکه که بگویم آن چیز را که حق ندارم یعنی من این حق را نداشتم و هرگیز هم نگفتم که من و مادرم را بپرستیم إن كنت قلته فقد علمته اگر گفتا باشم یا رب تو پس به تحقیق تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك یا رب تو میدونی اون در نفس من است و من نمیدونم در نفس تو است یعنی تو از همه چیز خبردار هستی انك انت علام الغيوب هر اینا به تحقیق تو داننده غیب هستی یعنی مثلا در اینجا اینها ملائکه ها حضرت نبی حضرت عیسی علی السلام و مادر معبود خود قرار دادند الله اونها را کرد و باز داشت و دلیل صالحین که يدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه حالون کسانی که دعون دعوت می‌کنند طلب می‌کنند با سوی پروردگارشان وسیله نزدیک شدن را ایهم شما می‌پرستید از از اینها اینها خودشان یا دعون یبتغون مثلا حضرت مثلا حضرت مسیح مثلا پیغمبر حضرت عیسی یعنی و صالحین همه اینها الله را طلب میکنند ایوهم اقرب کدامش به الله نزدیکتر است یعنی آیه بیان است کی ای مشرکان شما کسانی را که میپرستید خود اونها الله اونها خودشان یعنی معبودهای شما حضرت عیسی و الله را میپرستیدند و امد میکنن این معبودهای شما دعوائیتان يرجون رحمته امد میکنن رحمت الله را و يخافون عذابه و از خوف مترسن از عذاب الله سبحانه وتعالى وله انجا الدليل است كيانا را فلسدن صالحين را والدليل اين كي مشركا مكاب بودن در اختها و سنگها را مفلسدن قوله تعالى افرأيتم اللات والعزة خبر بتمن را از لات ایا دیدت شما لات عزة را یعنی كي خبرت هر در معنى افرايتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى افرايتم يعني اوية دي دي شما يعني كي خبر بته مرا استي از حالي لات العزة كدك جاهز لات امون مع بودهاي بودن كي مسلا بودهاي بودكي در طائف اهل الطائف عبادت سمي كان مسلا انا ادمي تي لات ادمي بودكي ادمي الصالح بود مرد الصالحي بودكي در خدمتي حاجها بود با به اونها را تعام و انوای تیار میکن وقتی که این دنیا گذاشت در قبرش خانه کردن ساختن و غیر الله او را عبادت کردن او ده می صالح بود و هم همین خیل مگن اینم بعضی ها مگن اینم چی مهم این العزه در بین مکه و طایف بود و اونها را عبادت میکردن مشریکای مکه و بوتی از اهل مکه بود یعنی اهل مکه اینا عبادت میکرد یا و المنات الیما میخیل در بین اوس و خزرج و خزرج قبایل اینا عبادت میکرد یعنی مهم کی اینها سه بت های کلان چی بت های کلان کلانی م... مشکای مکه بود بت های عرب همینا بود خب بعضی میگن اینها آدم های صالح بودن بعضی شای بعضی که مثلا درخته و, درخت و سنگ را قرار دادن و عبادت کردن. و هر حال بعضی هم میدن حتی در نام ها شنن. نام های مثلا کلمه الات را از اله گرفتن. از الله. کلمه عزه را از کلمه عزیز نام الله. منات را از کلمه منان نام الله سبحانه. و نام های الله را به معبودهای خود قرار دادن. یعنی اینها در اینجا سنگ ها و اینها را میپرسیدن. سنگ ها و درخت ها. که درخت بودرقت. مثلا عزه درخت, بود درخت های بود که د اردہ ها کشیدگی بودن و بنا کردگی او کگا کار نداشتن مناطم همین خه یا سنگ کلانی بود همون عبادت می‌کردند مهم کی نشری الله شریک کرد و حدیث ابی واقدی لی فی ان دین قال خرجنا مع نبی صلی الله علیه و سلم اله حنین و درف بعد از فتح مکه یک ماه ونحن حدثا عهد بكفر منى از كفر برگشته بود حدث يعني حدیث یعنی نو عهد یعنی مثلا زمان یعنی قریب زمان من قریب بود بکفر یعنی مو صبح یام شده ولل مشرکین سدره و مشکوم گن درخت داشتند که ينوت خب یکوفون عندها احتکوفشتن یعنی دقیقش علقزه میشتن و با شکست نخریم با دشمن و از روی تعظیم و بزرگ داشتن این درخت به این درخت رو میپرسن ذات الانواد شمیگن امینه یعنی مثلا ذات قرار میدن برای درختی بود برای قرار خب خوب بیقال الله ذات الانواد ناموشه امینه ذات الانواد یعنی درختی بود که در او مشریک ها تلاهاشون ها کشال میکردن از روی تبردستن و از روی بزرگ داشتن و اینو باید خب ابی واقید میگه فمررنا بسدرهتی ما میگه از پیش یک درختی گذاشتیم فقلنا یا رسول الله ایزعل لنا ذات انواط کما لهم ذات و مثلا قوم موسا برای موسی گفتن که اجعل لنا الهن كما اجعل لنا الهه كما لهم اله برای ما معبود یعنی همین مجردی طلب کردنی مجرد تنها تنها طلب کردنی قوم مثلا حضرت این بعضی صحابی های کی نو ای اسلام در دخشته گیفتند که از حقیقت شرکیه این همین طلب را کردند وقتی که از پیش گذاشتند درختی گفتند برای ما همین خیلی درختی برای تو این از او تبروک بجویم همین چیه طلب کردن از پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر صلی الله علیه و آله حکمی چی گفت گفت که والذي قلت گفت قسم به الله گفتن میسی که قوم موسا به موسی گفت اجعل لنا الهه کما لهم الها کفرانگه گف همورا گفت رنگی همو سخنیه یعنی معلومه شما طلب کردن تبروک و یا اینکه مثلا از غیر الله این شرک اس شاخ محمدی در در کشف بهش میگد اگر فت تو بعضی همین گپی میبد که معشان کرد اگر با می گفتفتن میکردن موشکیک می چرا زیرو که بعد از ای بعد از رسیدن حجت یا که بعد از فهمیدن که حروی جایز نیست انسان کار انجام داشت مشکیک میشه اما برای چی عشان داد و خاطری نمیدونستن و خاطری همان با خاطری نمیدونستم و خاطر ح زرشان داد و کفی نشدن و از این طلب کردن یورددن یا تبارک تبارک از اصل از درخت دیدهبی کوفر اما مجرد واسطه دانستن واسطه دانستن این شرک از غره خب به هر حال در این قایده سیون همین که مشرک که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اونها جنگید اونها عبادتاشا مختلف بود هم صالحی نمیپرستن هم انبیا و هم اینا یعنی کی ادعای عباد القبور که ما ولی ها را میپرستیم اونها بت و درخته میپرستن هیچ فرقی نمی کنه صرف عبادت برای غیر الله هیچ جایز نیست تمام خلاصه این قاعده سیون قائده اخیران قاعده 4 هم ده میگه ان مشرکی زمانینا اغلظ من الاولین مشرکای زمان ما سخت است بدتر است از روی شرک از مشرکای اول دیده خب دلیل چی گفت این مشرکای ابوالقودونه میشه وقتی که اپا بگویوله که دلیلش بگوش گفت دلیلش چیست مؤلف میگه که لان ز مشرکای اول ابو و ابو جهلیان هیلک 100 الله در کوشادی در خرسندیشان و یخلیصون پی شده اخلاصمند میشودن تنها عبادت را فریاد میزدن در سختی ها و مشرک و زمانین شرکون دائمان فراخای و شده دلیلش مشرک های زمانی ما تیر که اونها دائمی هست همه وقتا در در سختی و در تنجی در کشادی و در نتنجی خوب خب این چی هست دلیل های خیلی زیاده یعنی مثلا بعضی ها کتاب هایی دارن مثلا کتاب کرامات الاولیه و اینوه به حد چیزهای عجاوی با مدگست که امر کرده گستند علامه شمس در کتاب جهود العلمه الحنفیه به ابطال عقاید القبوریه در حقیقت مثال خیلی زیاد بیسی نقل میکنند که صوفی های پیر های صوفی میگفتند وقتی که در غرق شده نام مره بیگه. وقتی که در تاوقیماندی نامی مگیر یعنی در سختی ها و در دشواری ها هما وقت نامی مرا بگی گفتن میگفتن و مثال های زیاد در حقیقت همین خلال که نه در همین سختی میزنن حالی بعضی سوفییوش از ابسش هم که وقتی در وقتی زمین جنبی های سخت یا اینکه مثلا این رافیزی های بدبخت در وقتی بمب برران شدنی بعضی حالا تا از بعضی ها میبیید که مسئا حسین و اوفضاض گفته اکباراف ایراد میکنن و الله بگوند که مشرکای مکه الله میگفته با چی دلیل دلیل شوین في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر يشركون مشرکای مکه وقتی کی در کشتی میرفتن الله رو تنها عبادت میکردن خالصانه مخلصانه تنها الله یا الله فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون من شرد میار چوک الله میگاد واذا مس تکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه وقت کی شمارا بدی برصد در بحر طوفان شوه طلات و موج های دریا من تدعون الا اياه گوم گوم رو... میکنه کسانی کی بود میپرسیید غیر الله را الله را فلم ننجاکم من البر اعرضهم ای مشرک وقت کی الله بعد نک به کوشادی الله میگه و اذا غشيهم موج كالظلال وقت يكونوا را مشيكارا موج امواج دریا موج دریا اگر افت اونها را هجوم کنه چی الله میگه دعوا الله مخلصين له الدين میخوندن دعا میکردن مفلسانه برای الله سبحانه و تعالی یعنی دعا را مخلصانه خالصانه یا رب میگفتن که پیامبر صلی الله علیه و هم اون مرد رو پرسید که چند معبود داری گفت هفت تا گفت ششته در زمین گفت یک تا در اسمان وقتی گفت در سختی ها رو به کیمیاری گفت همون کی در آسمان است خب اما مشرکای زمانه ما چی مشرکای زمانه ما از جهت سیر هم در سختی است هم در تنجی و هم در سختی در سختیشون در حالت سختی همون معبودا شونه هم میگیرن همون معبودا یا حسین یا جیلانی یا فلان ابوالودین بلا بلاگردان یعنی همون معبودهای خود شونه در همه حالت به فراموش کرده گیستان در کتاب طبقات الاولیاء شاعرانی یک سخن های عجایب هست یا کی قصه های عجایب است در کتاب فضای اعمال محمد الیاسی کندهلوی هم هست فضای الاعمال در تبلیغ گنی حساب است اصلی اردو بیش تبلیغ گنی حساب بعد در فضای الاعمال فضیلت حج در فضائل تی برم قصه ها را میاره کی خیلی ادم ها ولی ها را فریاد کردن و ولی ها اونها را کمک کرد یا بالله در سختی ها. یکم از این جیهت. جیهت. دیوم از جیهت شرک مشرک های زمان ما که شیخ محمد زکر نکرده است. از جهتی در ربوبیت هم شرک آوردن که مثلا فرزند را از جانب ولی دانستان یا از جیهتی که کنترل کننده ای عالم چار تا اوتاج نگرد همون چار ق... اقطاب چار قطب همون قطب که اونها دارن یعنی این صوفی ها حکومت مخفی دارن از سی ست و چند تاو تا بیست و چند تاو ای, ای حتی بعد اخیرش بعد یک تا می شوند غوث کس می گرد غوث العظام می گرد بعد یک نفره همین معبود که خیشان قرار داده گستن که کنترل می کنند شرق و غرب را و جنوب و شمال ها همین چیزها را مشکای مکه خبر نداشت در کتاب های صوفی ها مثلا یوسف نبهانی هم کتاب طبقات اولیاء دارد یا این که کرامات لولیاء تل حمونجه همین تقسیم بندی ها را ولعاذ بالله ذکر کرده است که کدام ولی چی وظیفه دارد مثلا مثلا بدوی چیکارو میکند و مثلا شوزلی چیکارو میکنه به وظایفش ذکر کرده است که شفا دادن فلان میتیت که مثلا باران فلان مییاره کمک فریاد میزدگی و یاردام میکهگی فلان و بالا را فلان میگردونه یعنی خلاص کلون که الله سبحانه را هیچ چیز نیست ولعاذ بالله الله از مثلا کارش و یو خالی کردگی استان ول عیاتو بالله از ای جهت شرک بل قبور این عاصر مشکای متأخرین یعنی منسوب اسلام کی دعوا دارن سخت است از مشکای مکه از دی جهت هم در ربوبیت است و دین در سختی و در کوشادی و در تنجی است و الحمد لله رب العالمین و